این داستان فرزندان پادشاه یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون پادشاهی بود که پسر کوچکی داشت پیشگوها بینی کرده بودند وقتی پسرک به سن 16 سالگی برسه گوزنی اونو میکشه شاهزاده درست وقتی 16 ساله شد همراه شکارچیان سلطنتی به شکار رفته بود و موقع شکار از همراهانش دور افتاده بود که ناگهان گوزن زیبا جلوش ظاهر شد. شاهصاده حس کرد خیلی دلش میخواد این گوزن زیبا رو شکار کنه. مسافت طولانی گوزن رو تعقیب کرد ولی به نتیجه نرسید. بلاخره گوزن وارد حفری شد و بلافاصله تغییر شکل داد و به جوانی باریک اندام تبدیل شد. بعدم به ساده گفت دیگه همه چی تموم شد. بالاخره تو رو به چنگ بردم. چند سال آزگاره که تو رو زیر نظر دارم و حتی پنهانی تعقیبت میکنم و نمیتونم به چنگت بیارم. اون مرد شاه ساده رو از دریاچه وسیع عبور داد و به قصری سلطنتی برد. اونا در سالونی پشت میز نشستن و با پادشاه غذا خوردند. وقتی غذاشون تموم شد، پادشاه گفت من سه تا دختر دارم. تو امشب باید در اتاق دختر بزرگم کیشک بدی. از ساعت نه شب تا صبح هر ساعتی که میگذره صدای ضربه های ساعت شنیده میشه و من آروم وارد اتاق میشم اگر صداتون نشنوم صبح فرداش تو رو میکشم ولی اگه بیدار باشی و جواب منو بدی میتونی با دخترم ازدواج کنیم شاهزاده وارد اتاق دختر پادشاه شد و مجسمه سنگی بزرگی رو توی اتاق دید شاهصاد خانم رو کرد به مجسمه و گفت پدرم آخر هر ساعت وارد اتاق میشه. آیا حاضری به جای شاهصاد جواب پدرم رو بدی؟ مجسمه سنگی اول سرش رو با حرکتی تند تکون داد و بعد حرکتش رو کند کرد و بالاخره متوقف شد. صبح روز بعد پادشاه به شاهزاده گفت از پس وظیفه‌ای که بهت محول شده بود به خوبی بر اومدی ولی هنوز کاره دیگهی هم هست که باید انجام بدی تا بتونی با دخترم ازدواج کنی و پادشاه ادامه داد امشب باید در اتاق دختر دومم کشیک بدی هر ساعتی که اومدم و تو رو آهسته صدا زدم باید آماده جواب دادن باشی وگرنه فرداش تو رو میکشم اونا وارد اتاق دختر دومی شدن در این اتاق هم مجسمه سنگی بزرگی قرار داشت شاهزاده خانم از مجسمه خواست که هر ساعتی که پادشاه اومد به جای شاهزاده جوابشو بده مجسمه هم سرش رو با حرکتی تون تکون داد و بعدم حرکتش کم کم آهسته شد و متوقف شد شاهزاده نزدیک مجسمه نشست سرش رو روی دستهاش گذاشت و خوابید. صبح روز بعد پادشاه اومد و گفت وظیفت رو خیلی خوب انجام دادی ولی هنوز نمیتونم بزارم با دخترم ازدواج کنی. امشب باید در اتاق دختر سومم کشیک بدی. مثل های قبل من رأس هر ساعت سرکشی میکنم. اگه جوابم رو دادی چه بهتر؟ در غیر این صورت مجازات تو مرگه. بعد اونا وارد اتاق دختر سوم شدن. در اون اتاق مجسمه قرار داشت دو برابر بزرگتر از مجسمه های اتاقای قبلی دختر سومی به مجسمه گفت اگه پدرم اومد جوابشو بده مجسمه بزرگ سرشو تکون داد و حدود نیم ساعت طول کشید تا حرکت سرش متوقف بشه مثل دفعه قبل شاه ساده با خیال راحت خوابید. روز بعد پادشاه اومد و گفت که بدون شک وظیفتو خیلی خوب انجام دادی. ولی هنوز هم موقع اون نشده که بذارم دخترم به عقد تو در بیاد. پادشاه گفت برای اینکه بتونم در این مورد تصمیم بگیرم، باید درختای یک جنگل انبوه رو در فاصله یک صبح تا شب یعنی در یک روز قطع کنی. بعد پادشاه یه تبر و یه چکش شیشهای بهش داد تا شاهزاده بتونه درختای جنگل رو قطع کنه. شاهزاده با نخستین زربه ای که به درخت زد در همون لحظه اول تبر و چکشش خورد شد. شاهزاده سخت اندوکین شده بود و فکر کرد که دیگه کارش تموم شده و به زودی پادشاه دستور میده که اونو بکشن. از شدت ناراحتی شروع به گریه کردن کرد. ظهر که شد پادشاه به دخترانش گفت که یکی از شما چیزی براش ببرین که بخوره. اولی رو دومین دو دختر گفتن به ما که مربوط نیست. بذارین آخرین نفری که توی اتاقش کشیک داده غذا رو براش ببره. با این حساب دختر سومین را افتاد و رفت تا برای شاهزاده غذا ببره. وقتی به جنگل رسید و از و احوال پرسید شاهزاده جواب داد که اصلا و خوب نیست. شاهصاده خانم اصرار کرد که غذاشو بخوره. اما شاهزاده گفت من به زودی میمیرم، برای همین تصمیم گرفتم که دیگه چیزی نخورم ولی شاهزاده خانم اونقدر اصرار کرد تا بالاخره جوون شروع کرد به خوردن غذایی که دختر پادشاه آورده بود بعد از غذا شاهزاده خانم بهش گفت که بیا با من توپ بازی کن شاهزاده زود خسته شد و خوابش برد بعد از اینکه شاهزاده خوابید شاهزاده خانم دستمالش رو در آورد و گره زد بعد دستمال رو سه بار به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی بیرون بیایید بدون درنگ تعداد زیادی کتوله ظاهر شد و از شاساده خانم پرسیدند که چه امری داره. شاساده خانم گفت تمام درختای این جنگل رو باید در عرض سه ساعت قطع کنین. مردان خاکی با همه توانشون دست بکار شدند. بعد از سه ساعت کار تمام شد. اونا به شاساده خانم گفتند که کار تمام شد. و شاهصاد خانم دید که وظیفه شون رو خیلی خوب انجام دادن دوباره دستمال به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی برگردید اونا فوری ناپدید شدن بعد شاهصاد خانم رفت و شاهزاده رو از خواب بیدار کرد اون از اینکه میدید درختا قد شدن زوغ زده شده بود شاهصاد خانم بهش توصیه کرد که تا ساعت شیش همونجا بمونه و بعد از ساعت شیش برگرده شاهزاده بعد از ساعت 6 برگشت. پادشاه ازش پرسید که آیا وظیفه‌ای که بهش محول شده رو انجام داده؟ شاهزاده هم جواب داد: بله، جنگل رو از تمام درختها پاک کردم. بعد از اون پادشاه و شاهزاده پشت میز شام نشستن. داشتن شام میخورند که پادشاه به مرد جوون گفت: "باید یک کار دیگه انجام بدی تا بذارم با دخترم ازدواج کنی." پادشاه گفت که باید یک آب بند عمیق درست کنی و اون رو با آبی زلال پر کنی آب آب بند باید مثل آینه شفاف باشه و انواع رو بشه توش دید صبح روز بعد پادشاه بهش یک بیل شیشه‌ای داد و گفت که آب بند باید تا ساعت شیش عصر آماده بشه شاه ساده بلا کارشو شروع کرد ولی بیل هم مثل تبر در اولین ضربه شکسته شد اون دیگه قادر نبود به کارش ادامه بده دوباره به مخمسه افتاده بود و نمیدونست چیکار کنه ظهر که شد سومین دختر پادشاه اومد و براش خوراکی آورد و از اوضاع احوال جویا شد شاهزاده که صورتش رو میون دستش پنهان کرده بود گفت افسوس که باز هم بد اقبالی آوردم شاهزاده خانم سعی کرد بهش دلداری بده ولی گفت که بعد از صرف غذا و استراحت نظرش تغییر میکنه شاه از فرد ناامیدی بازم از خوردن غذا امتنا کرد چون فکر میکرد که مرگش حتمیه و خوردن غذا فایده نداره با ترغیب شاه ساده خانم شروع کرد به غذا خوردن و بعد از اینکه غذاش تمام تموم شد به خواب رفت وقتی شروع به خورناس کشیدن کرد شاه ساده خانم دستمالش رو در رو ورد سه بار به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی بیرون بیایید کتوله ها بلا فاصله حاضر شدن و از شاستاد خانم پرسیدن چه اواملی داره. شاستاد خانم گفت باید سه ساعته این آب بند رو پاک کنید و با آب زلال و انواع ماهی پر کنید. کتوله ها شروع به کار کردن و در عرض دو ساعت همه چیز آماده شد. بعد به شاستاد خانم خبر دادند که دستورش اجرا شده. شاهزاده خانوم هم مثل گذشته سه بار با دستمالش به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی برگردید وقتی اونا ناپدید شدن شاهزاده خانوم به سراغ شاهزاده رفت و اونو از خواب بیدار کرد شاهزاده با چشمانی حیرت انگیز دید که همه چیز آماده شده شاهزاده خانوم به قصر برگشت ولی به جوون گفت که تا ساعت 6 نگرده جوون ساعت 6 به قصر رفت پادشاه پرسید که آیا آب بند آماده شده؟ شاهزاده جواب داد بله و پادشاه گفت بسیار خوب. ولی وقتی شام میخوردند پادشاه گفت که باید یک وظیفه دیگه هم انجام بدی و الا نمیتونم در مورد ازدواج با دخترم تصمیم بگیرم. شاهزاده پرسید وظیفه دیگه چیه؟ پادشاه جواب داد تپه بزرگی در اینجاست که چند پرتگاه سنگی داره. تو باید روی تپه رو از سخره ها پاک کنی و در فضایی که به وجود میاد یک قصر زیبا با تمام لوازمش بنا کنی. صبح روز بعد پادشاه یک کلنگ شیشه ای و یه مته به جوون داد و مثل دفعات قبل گفت که کار باید رس ساعت شیش تموم بشه. شاهزاده کارش رو که شروع کرد با اولین ضربه کلنگ خورد شد و تیکه هاش این وران پخ پخش شد. و فقط دستش تو دستش باقی مونده بود با مته هم که دیگه نمیتونست کاری بکنه شاهزاده ناامید و دل سرد نشست تا شاهصاده خانوم بیاد و با هم چاره بیاندیشن زهر که شد شاهصاده با ظرف غذا اومد شاهزاده به استقبالش رفت و ماجرا رو براش تعریف کرد شاهصاده خانم بهش گفت که غذاش رو بخوره و بعد هم بخوابه بعد از خوابیدنش شاهزاده خانم دستمالش را گره زد و سه بار به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی، بیرون بیایید. مردان خاکی ظاهر شدن و ازش پرسیدن چه اوامری داره؟ شاهزاده خانم توضیح داد که در عرض سه ساعت باید همه سنگای تپه رو از جا بکنن و در اونجا یه قصر شکوه بسازند و تمام لوازم ضروری قصر رو هم باید فراهم کنند. کتوله ها بلا فاصله، ابزار و وسایل لازم رو آوردن و کارشون رو شروع کردن و بعد از سه ساعت همه چی تموم شد. خاتمه کار رو به شاهصاد خانم اطلاع دادن. شاهزاده خانم هم خوشحال دستمالش رو سه بار به زمین کوبید و گفت ای مردان خاکی برگردید. وقتی اونا ناپدید شدن، شاهصاد خانم شاهصاده رو از خواب بیدار کرد. اون دوتا مثل پرنده های خوشحال زوق زده با هم به برگشتند. پادشاه پرسید آیا قصر آماده شده؟ شاهزاده جواب داد بله. پادشاه موقع صرف شام به شاهزاده گفت من نمیتونم اجازه بدم با دختر کوچکم ازدواج کنی مگر اینکه خودت اولین دختر و دومین دخترم رو راضی کنی. شاهزاده جوون و شاهصاده خانم که از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدن و نمیدونستن چه اکسال عملی نشون بدن، که شد تصمیم گرفتن با هم فرار کنند وقتی که کمی از قصر دور شده بودن، شاهزاده خانم سرش رو برگردوند و دید که پدرش داره تعقیبشون میکنه. بعد فریاد زد، باید چیکار کنیم؟ پدرم داره ما رو تعقیب میکنه و به زودی ما رو دستگیر میکنه. بعد به شاهزاده گفت که من تو رو به یک خار تبدیل می کنم و خودمم به گل تبدیل می و در پناه تو می مونم. وقتی پادشاه به نقطهی رسید و که دخترش و شاهزاده را از دور اونجا دیده بود، اونا را پیدا نکرد. در عوض شاخ گلی اونجا دید که خاری بهش چسبیده بود. حوض کرد که گل رو بچینه ولی خار در دستش فرو رفت و مجبور شد برگرده به قصر. وقتی برگشت به قصر همسرش ازش پرسید چرا دست خالی برگشتی؟ پادشاه جواب داد وقتی اونا رو تغیب میکردم ناگهان قیب شدن. بعدم گفت که در راه گل روزی دیده که یک خاری بهش چسبیده بود. همسرش بهش گفت باید اون گل روز رو با خارش میچیدی. اونا بعد از اینکه تو برگشتی فرار کردن. پادشاه دوباره برگشت که گل بچینه ولی اون دو نفر از اونجا رفته بودن. پادشاه دوباره شروع کرد به تعقیب اونا شاهزاده خانم بعد از مدتی متوجه شد که دوباره پدرش در پی اوناست به شاهزاده گفت چاره ای نیست باید تو رو به یک کلیسا تبدیل کنم خودم بشم کشیش محلی اون وقت میرم بالای منبر و برای مردم موعظه میکنم دوباره وقتی پادشاه به اونجا رسید دید که کلیسایی هست و کشیشی بالای منبر داره موعظه میکنه پادشاه وارد کلیسا شد. خطابه کشیش رو شنید و بعدم به قصر برگشت. همسرش ازش پرسید که چرا فراری ها رو با خودت نیاوردی؟ پادشاه در جواب گفت اونا رو تقیب کردم و به یک کلیسا رسیدم که کشیشی داشت مععزه میکرد. منم ردشونو چون گم کرده بودم موعظه رو شنیدم و برگشتم. زنش گفت تو باید کشیش و همراه خودت می آوردی. کلیسا هم خودش دنبال اون میامد. این بار منم باید به همراهت بیام. مادرم به دنبال دخترش رفت. همین که چشم دختر به مادر افتاد با ناراحتی گفت با اومدن مادرم وز وخیمتر میشه. حالا تو رو به یه حوز چه و خودم به یه ماهی تبدیل میکنم. ملکه جلوتر رفت و حوز بزرگ رو دید یک ماهی شادا بودید که داشت شنا میکرد. سعی کرد که ماهی رو به چنگ بیاره ولی نتونست. بعد تمام آب حوز رو نوشید. ولی حوز دوباره پر آب شد ملکه به این نتیجه رسید که نمیتونه موفق بشه برای همین تصمیم گرفت به قصرش برگرده ولی قبل از حرکت ست تا فندوق به دخترش داد و گفت اگر گرفتار بشی این فندوقا کمکت میکنه دو تا جوان به سفرشون ادامه دادن و بعد از یک ساعت به قصری نزدیک شدن که شاهزاده قبلا اونجا زندگی میکرده نزدیک قصر یه روستا بود شاهزاده گفت تو اینجا باش من میرم و با کالسکه و خدمتکارا برمیگردم ساکنای قصر از دیدن شاهزاده خوشحال شدند اون به همه خبر داد که عروسش در دهکده منتظره و باید کالسکه رو آماده بکنند خدمتکارا رفتن اسبار و آماده کردن و به کالسکه بستن اما قبل از اینکه شاهزاده سوار کالسکه بشه مادرش اونو در آغوش گرفت و بوسید با اون بوسه شاهزاده دچار فراموشی شد اون همه گذشته های دور و نزدیک خودش رو فراموش کرد. حتی یادش رفت که باید به سراغ عروس بره. ملک دستور داد ها رو از کالسکه باز کنن و همه به قصر برگردن. بعد از انتظاری طولانی و بیفایده شاه ساده خانم نزد آسیابانی رفت که آسیابش به قصر تعلق داشت و اونجا مشغول کار شد. اون تمام روز کنار آب می سوچیز و چیز می شست. صبح یکی از روزا که ملکه برای هواخوری کنار آب اومده بود چشمش به شاهزاده خانم مفتاد. ازش خیلی خوشش اومد و گفت چه دختر زیبا و دوست داشتنی. اما ملکه از اونجا که رفت اونو از یاد برد. شاهزاده خانم مدتی طولانی در خدمت آسیابان بود. ملکه بالاخره از سرزمینی دور دست دختری پیدا کرد که همسر فرزندش بشه. دختر به سرزمین شاهزاده اومد. مهمون هم اومدن و ورود اون رو جشن گرفتن شاهزاده خانم از آسیابان اجازه خواست که به تماشای جشن بره در روز عروسی یکی از فندوقها رو باز کرد و لباسی بسیار زیبا و گرانقدر در اون پیدا کرد اونو پوشید و به کلیسا رفت و اونجا نشست عروس دامادم وارد کلیسا شدن عروس که یک لحظه سرش رو برگردونده بود و شاساد خانم رو با اون لباس زیباش دیده بود پاشو توی کفش کرد که حتما باید اون لباس رو بپوشه وگرنه حاضر نیست مراسم عقد اجرا بشه مهمون به خونه خودشون برگشتن از اون زن قریب هم تقاضا شد لباسش رو در طول مراسم به عروس قرض بده. ولی هر قدر هم پول بهش پیشنهاد کردن حاضر نشد که لباسو نه بفروشه نه نب به امانت بده. بالاخره اون به شرطی حاضر شد اون لباسو بده که اجازه بدن پشت در اتاق شاهزاده بخوابه. این شرط پذیرفته شد. ولی خدمتکارا به شاهزاده داروی خواب آور دادن و اون نشنید که چطور تمام شب زن غریبه ماجراهای های رو بازگو کرد و گفته بود که اون همونه که درخت های جنگل رو بریده آب بند رو پر کرده و در اون تقیب و گریزه شاهزاده اونو به یک گل و کلیسا تبدیل کرده پس چرا همه زحماتش فراموش شده شاهزاده به خوابی چنان امیق فرو رفته بود که هیچ چیزی نشنید روز بعد عروس خانم اون لباس زیبا رو بتن کرد و به همراه داماد به کلیسا رفتند. دوباره اون حادثه تکرار شد. چون زن غریبه با لباسی باز هم زیباتر در کلیسا حاضر شده بود. زن غریبه یه بار دیگه کنار اتاق داماد بیدار نشست. ولی این بار شاه ساده از خوردن داروی خواباور خودداری کرده بود. همه درد دلای زن و شنید و سخت ناراحت شد. اون روز بعد نزد نامزد قبلیش رفت و از اینکه این همه درد سر درست کرده بود عذرخواهی کرد. شاهزاده خانم از سومین فندق لباسی زیباتر از دفعات قبل بیرون آورد و در مراسم عروسی خودش پوشید. لباس بسیار زیبا بود. مهمونا از زن و مرد و پیر و جوان سر راه عروس اونقدر گل ریختن که در مسیر عروس داماد فرشی از گل درست شده بود. سرانجام شاهزاده و عروس خانم به خوبی و خوشی ازدواج کردند ملکه و اون عروس حسود هم از قصر گریختند